<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> بحث كلماتي كي عمل فعل رو انجام مدادند بحث اسم تفزيل و اسم التفضيل و اسم ديگهي كي عمل فعل رو انجام مده اسم تفضيل هست و هرف عطف هست و هو اسم تفضيلو تعريف ميكونه الصفة الدالة على المشاركة والزيادة اسم تفضيل صفتيست كي دلالة برمشاركات و زیادت میکنه موقعی که میگویم زیدون اعلم من امر در دانستان زید و امر با هم شریکند هر دوتا در هر دوتا این صفت وجود داره و همچنین دلالت بر زیادت میکنه زیدون اعلم من امر علم زید بیشتر هست از امر. پس است که دلالت بر مشارکت و زیادت میکنه که اکرم و منده اکرمتر خب این استفاده و استعمالش سه حالت داره و استعمالو به من استعمال میشه اسم تفضیل با من مانند زیدون اکرامو من عمر خب و مضافا لنكره استفاده میشه مضاف به نکره میشه مانند زیدن افضل رجل در این دو حالت یعنی زمانی که قبل از مفضول قبل از مفعل نه قبل از مفذول حرف من آمده باشه و زمانی که اسم تفضیل مضافه به نکره باشه در این دو حالت فیفرد و یذکر اسم تفضیل خودش به شکل مفرد بکار میره و به شکل مذکر در این دو حالت اسم تفضیل به شکل مفرد و مذکر بکار میره و مطابقت نداره حالا دقت بفرمایید امثلی رو آورده است ابن هشام زید افضل من امر زید مفرد افضل مفرده و زیدانی افضل من عمر زیدان مصنای اگر ما میخواستیم مطابقتش بدیم میگفتیم از زیدانی افضل افضلانی من عمر اما از اون جایی که مفظول با من مجرور شده در این حالت ما اسم تفضیل رو به شکل مفرد و مذکر به کار میبریم. دیگه مطابقتش نمیدیم با موصوف. هندون افزل و امر، افزل بازم مذکره. مونس به کار نرفته. هندانی افزل و امر، هندان اینجا مسننه و مونسه. اما افزل مفرد و مذکره. پس در دو حالت اسم تفضیل به شکل مفرد و مذکر به کار میره. زمانی که مفضول مجرور بشه با حرف جر من، و دوم زمانی که اسم تفضیل مضاف باشه به, یک به کلمه نکره زیدون افزل و رجل از زیدانی افزل و رجلن. از زیدونه افزل و رجال دیگه از زیدونه جمع افضلونه به کار نرفته افزل به کار رفته همچنی اگه ماننس باشه اصلا موصوف، ماننده الهنداتو افزل و نسوت افزل باز هم مفرد و مذکر به کار رفت اسم میگهعملو به من اسم تفیل با من به میشه مانند زیدون ااکرم من امر و مزافن لینکرتن و مزافه بکره در این دو حالت فه و فرادو مفرد بکار کار و مذکر این ی و مذاکر فائلشون هو هست که به اسم تفزیل بر یعنی اسم تفیل مفرد و مذکر بکار کار و به و استعمال می شود با ال یعنی زمانی که اسم تفضیل فلام داشته باشد این حالت دومش هست اسم چه حالت داشت. حالتی که مشکل مفرد و مذکر به کار میرفت حالت بعدیش زمانی که مطابقت با موصوف داره چه زمانی مطابقت با موصوف داره زمانی که ال فلام داشته باشه و به الل و با استفاده استعمال میشه اسم تفسییل فیو تاابقق در این حالت مطابقت داره با موصوف. میگویم زیدون افزل از از اگر معص باشه افضلون، افضلانی، افضلون، افزل ف یعنی دیگه اون موقع اسم تفسییل به شکل مع میره. میگیم هندون الفوزلا زينبو الكبراء بالي بشكل موانسش بكار موين الهنداتو الفوزلياتو بالي بس ميجي وبيال واستعمال مش باال فيطابقو ترين حالتش مطابقات داري ومضافا لمعرفة وحالتش سيفو مش زماني كم مضافة بمعرفي باشد ببینید اگر مضافه به نکره بود اسم تفضیل به شکل مفرد و مذکر بکار میرفت که مثالاش ذکر شده. ولی الان میگه یکی از شیوه استعمالش زمانی که مضافه به معرفه باشه اینجا دو وجه جایزه. میتونیم مطابقتش بدیم با موصوف میتونیم مطابقتش ندیم و مفرد و مذکرش به کار ببریم. از زیدانی افزلو القوم اینجا اسم تفضیل ما مضافه به القوم هست که معرفه هست القوم الیفلام داره معرفه هست خب اینجا دیگه ما دو حالت میتونیم بگیم میتونیم بگیم از زیدانی افزل القومی مفرد و مذکر به کار ببریم اسم تفضیل رو و میتوانیم مطابقتش بیدیم با از زیدان که مسنده هست و مذکر بگیم از زیدانی افزلال القومی به خاطر مضاف بودن هست میشه این شد از بحث تا اینجای کار و لا ینصبو المفعول مطلقا و میگه نحوی ها اجماع دارن بر این که اسم تفضیل مفعول رو منصوب نمی کند اسم تفضیل مفعول را منصوب نمی پس مفعول ندارد بله فقط اسمه فقط فائل دارد ولا يرفع في الغالب ظاهرا الا في مساله الكحره المساله دي از احکامات اسم تفزیل هست اینکه میکند میفرماید که اسم تفضیل غالبا اسم ظاهر را مرفوع نمیکنه یعنی اسم تفزیل فائل داره ولی فاعلش ضمیر مستتره اسم ظاهر رو معرفونه نمیکنه. یعنی فائلش اسم مفعول میگم. فائلش اسم ظاهر قرار نمیگیرد الا فی مسئله الكحه مگر در مسئله کحل مسئله کحل چی مسئله است؟ مسئله کحل یک مسئله است که هرگاه هرگاه قایده کلی هست. ولی از اونجایی که مثالش در مثالش مسئله کحل شده این مشهور شده به مسئله ی کحل نیست که فقط همین خود همین مثال در همین یک مثال نه هر مسئله که این حالتو داشته باشه چه حالتی؟ ما رأی تو رجلن احسن فی عینه الكحل منه فی عین زید. خوب. خود ابن هشام اینو آورده رحمت الله علیه گفته واظابه تو ان يكون في الكلام نافیون کهل این است که در کلام نفی باشد مانند ما رأیت تو دیگه منفیه خوب بعد از این نفی اسم جنسی اومده باشه ما رأی تو رجلا رجلان اسم جنسی بعدش این رجلان موصوفه اسم تفضیل قرار بگیره ما رأی تو رجولا احسنه خب ترکیب این جمله چیست؟ ما رأی تو فعل با فائلش رجولا مفهول بهی احسنه صفته رجولا پس رجولا موصوفه اسم تفصیل قرار گره پس ضابطه و قاعده این مسئله کهل این است که کلامی باشد اون کلام منفی یا شبه منفی باشه مثل استفهامو نهی بعدش اسم جنسی مومده باشه که اون اسم جنس موصوفه اسم تفصیل قرار بگیره و بعد از اون اسم تفضیل اون فائلی که اسم ظاهر است و به وسیله این اسم تفضیل مرفوع شده است که در این مثال الکهل هست بر خودش به دو جهت مفضل شده باشه به دو جهت حالا دقت بفرمید ما رأیت رجلا احسن فی عینه الكحل منه في عین زیت ندیدم هیچ مردی را که زیباتر باشد در چشمش سرمه از چشم زیت اینجا فائل هم مفضل است و هم مفضول هم زمان مفضل است به این اعتبار که در چشم زید هست و مفضول هست به این اعتبار که در چشم غیر از چشم زید باشد زمانی که در چشمی غیر از چشم زید باشد این مسئلهای مسئله بود که تا اینجای کار این کتاب آورده بود موافقه فيروز باشيد